گره خوردن همه ما با استاد از کلاس یک جای متفاوت شروع شد. کلاسی که دوره اولش بیش از سه سال پیش شروع شد و و شروعی کل اتفاق و ماجرا، شروعی برای تغییر، تغییرهای مثبت، یک جای متفاوت زندگی آدمهایش را با قبل و بعد از خود متفاوت کرد. از همان لحظه ورود و به کلاس میشد فرقش را حس کرد. نه خبری از زرق و برغهای همیشگی بود و و نه ظاهری فریبنده برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطبانش اما چیزی داشت فراتر از همین اینها صمیمیت عمیق حضوری گرم و نگاهی که شنیده میشد و شاید همین کافی بود تا بمانیم دل ببندیم و دگرگون شویم یک جای متفاوت فقط یک اسم نبود واقعا جایی بود که آدم را با خودش با دقدقه هاش با دیگران آشتی میداد ارزشمنده خیلی هم ارزشمنده این که در این روزگار پرهایهو کسی دلش برای ما دهه هشت دادی ها بسوزه کسی که نه کارش اینه و نه دقدقهش کارمند و مهندس کامپیوتر اما وقت میذاره میشنبه هم صحبتمونه و این خودش یه دنیا ارزش داره تو دوره‌ای که خیلی هست کنار نسل ما بی تفاوت رد می نه تنها دستی نمیگیرند گاهی هم سنگندازی می در حالی که این نسل با همه تفاوتها و گاهی دردسرهاش سرهاش درخشانی های داره فقط یکی باید باشه که ببینه که بفهمه کار کردن با این نسل آسون نیست اما اون با وجود همه مشغله ها و فاصله های ظاهری برامون وقت گذاشت شنید، همراهی کرد، دلگرم کرد و ما قدردانیم خیلی خیلی زیاد او ساده بزرگوار و ارجمندم. در این روزهای پرمعنا که به نام معلم مزین شده دلم خواست چند سطر ساده اما از عمق جان برای شما بنویسم برای استادی که نقش و تحصیلش در زندگی ما فراتر از کلاس و درس بود راستش رو بخواید شما فقط یک معلم ساده نبودید بلکه شبیه یک پدر دلسوز مسیر درست زندگی را هم بهمون به یاد دادید شما بدون هیچ چشم داشتید وقت و انرژی خودتون رو صرف ما کردید و حتی از خانوادهتان گذشتید تا ما را رشد دهید. توی کلاس های شما خیلی چیزا یاد گرفتیم از سرباز امام زمان بودن نه فقط با حرف بلکه با دل و عمل تا اینکه چجوری توی التاریکی ها راه درست رو پیدا کنیم وقتی دل مشغول و سردرگم می شدیم جوابای آروم و عمیق شما مثل یک نسیم سبک همه تردید هامون رو با خودش می برد. توی اردوهای معنوی توی لحظه های ناب حرم و اعتکاف، همیشه کنارمون بودید و کمک کردید تا چراغ ایمان توی دلامون روشنتر بشه. اما از اون طرف هم وقتی لازم بود با یه جدیت آروم و قشنگ ما رو توی درس سخت مقاوم کردید همیشه حس میکردیم یه حامی داریم کسی که دلش با ماستو نمیذاره زمین بخوریم شما شدین محافظ قلب های جوونمون روزایی که دنیا پر از چالش بود شما پشتمون بودید و محبت و حکمت حضور شما در زندگی ما برکتی است که همیشه قدردان آن خواهیم بود اگر مسیر متفاوت را انتخاب کردیم اگر نگاه ما به زندگی و دین هم شد اگر رفاقت و معرفت را در کنار همان مختیم همش به برکت وجود شماست از شما ممنونیم که ما را با ابعاد جدیدی از دینداری و مسیر الهی آشنا کردیم با تمام وجود روز معلم را رو به شما تبریک میگوییم و برای تن سلامتی و آرامش آرزو میکنیم با احترام و عشق شاگردانی که سایه مهر شما را همواره بر سر دارند